سهرشون خسرو به خاور علم بر کوف ساران زد به دست مرحمت یارم در امید واران زد چو پیش صوف روشن شد که حال مهر گردون چیست برآمد آمد خنده خوش بر غرور کامگاران زد نگارم دوش در مجلس به عزم رخص شون برخواست گره بک شود از ابرو و بردلهای یاران زد من از رنگ سلا خواندم به خون دل بشستم دست که چشم باد پیمایش سلا بر حوش یاران زد کدام آهندلش آموخت این آین ایاری که از اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد خیال شه سواری پخت و شد ناگه دل مسکین خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد دراب و رنگ رخسارش چه جان دادیم و خون خوردیم چون نقشش دست داد اول رقم بر جان سفاران زد دراب و رنگ رخصارش چه جان دادیم و خون خوردیم چون نقشش دست داد اول رقم بر جان سفاران زد منش با خرقه پشمین کجا اندر کمن دارم زره موی که مجگانش ره خنجر گزاران زد نظر بر قرعه توفیق و یمن دولت شاه است به دهکام دل حافظ که فال بخ یاران زد شهنشاخ مزفرفر شجاع ملک و منصور که جود قش خنده بر عبر بحاران زد از آن ساعت که جامعه می به دست او مشرف شد زمان ساغر شادی به یاد میگو ساران زد ز شمشیر سرف شانش زفر آن روز بدرخشی که چون خورشید انجم سوز تنها بر از آران زد دوام عمر و ملک او بخواب از لطف حق ای دل که چرخین سکه دولت به دور روز روزگاران زد